افسونه افسانه به نام خداوند بخشنده مهربون، دوستان نازنین رادیو نمایش، سلام افسانه ها گونه از ادبیات داستانیان که سینه به سینه روایت و حکایت شدن تا به امروز رسیدن افسانه ها بخشی از هویت فرهنگی یه ملتن که نشانه از ادبیات آداب و سنن و آین های بومی و محلی اون کشور را در خودشون دارند در این برنامه میخواییم یکی از افسانه‌های کشور کره را براتون روایت کنیم. افسانه‌ای که بیشک برای ما آموزه‌های اخلاقی و فرهنگی به همراه خواهد داشت. افسانه‌ای به نام سیل هولناک که از کتاب افسانه‌های عامیانه کره نوشته زورنگین سوپ اقتباس شده و جمشید سلطانی هم ترجمه این افسانه را به عهده داشته اگه همچنان ما رو با برنامه افسون افسانه همراهی میکنین شما رو به شنیدن افسانه سیل غولناک دعوت میکنین گوزشته خیلی دور در کشور کره درخت برگ بوی بود که عمر زیادی داشت با شاخههایی تنومند و ریشه‌ای که در عمق زمین فرو رفته بود پری زیبایی عادت داشت ساعتها روی شاخه های سرسبز این درخت بشینه و استراحت کنه اما یه روز که پری در حال استراحت بود اتفاقی افتاد آرام باشده هخت وقتیشو خواهدت کنیدی حالم بد میشه ولی تو همیشه دوست داشتی وقتی روی شاخه ها استراحت کنی شاخه ها حرکت کنن آره برای این درسته. یه حالم خوب بود این حالم خوب نیست چرا حالت خوب نیست؟ میکنم وقت زمیمانم نیست. برای همینم تمام سنم در میکن از دست من کاری میاد؟ نمیدونم نرد حالم خوب نیست میخوایی بیای رو زمین بشینی؟ میترسم یه وقت موقع زایمان بچه از اون بالا بیفته آه نه همینجا خوبه فقط فقط فقط چی؟ فقط اگه من اگه من بعد از زایمان زنده ننم ازم که بچه بزرگ کن چرا نباید زنده بمونی؟ تو خوب و مهربونی هستی باید زنده بمونی و بچه تو خودت بزرگ کنی نه ده. نه یه حسی به هم میگه که بعد از تفلود فرزندم زنده نمیدیم دلم میخواد مثل خودت خوب و محکم و مهرب اون بار بیاری دلم میخواد همه جور مراقبش باشی تا ما بادو احساس تنهایی و دلچنگی کنی ولی... ولی من نمیتونم هم... همیشه و همه جا همراهش باشم هر مهربون مهربو ریشه های من در خاکه توانایی راه رفتن ندارم مهم نیست اگه به اون راه رسم زندگی رو یاد بده حتی اگه همراهش نباشی میتونه خوب و بار بیاد به هم قول بده درخت به هم قول بده درخت قول بده همیشه مراقب بچم هستی باشه. قول میدم؟ ساعتی بعد زایمان کرد و پسر زیبایی را به دنیا آورد و اسمش هوانگ گذاشت ساعتی بعد ما، در حالی که پسرش رو در بغل داشت از دنیا رفت از اون روز به بعد درخت مراقب هوانگ بود تا اینکه اون جوان بالغ و مهربونی شد چی شده پدر چرا تو فکری؟ حس خوبی ندارم هوانگ این سکوت نگرانم نکنم اما اینجا همیشه ساکته ساکت و آروم هرچند الان صدای بارون سکوته شکسته درسته اما سکوت همروز مرموزه هم؟ و همیه این بارونی که مثل رگبار میباره خبر خوبی رو نمیشنم اینو من که یه درختم خوب میبرم منظورتون چیه؟ منظورم اینه که خبرهای ودی در مثلا چه خبری؟ یک چیزی مثل سیل زلزله یا حتی رانش زمین <تصفيق> هیچ کدوم اینها خوب نیست شاید خسته این این روزا متوجه هستم که خسته نظر می دسیم. یه درخت هرقدر هم که پیر و خسته باشه ولی هوشیار و دقیق برای همین نگرمه هم. شما که دیگه نباید نگران باشیم پدر ریشهاتون مثل ستونهای محکم تو زمین برو رفتن هیچ سیلی نمیتونه شما رو تکن بده خیلی هم نباید به ریشه های پیر و پرسوده من امیدوار باشی هونگ سیل اگر هول ناک باشه به راحتی میتونه ریشه های من بشکنه و با خودش ببره داریم با حرفاتون نگران هم نه یا اینکه نگران باشی مراقب باش بسرم به محض اینکه خطری رو حس کردی باید بیایی و به من نزدیک بشه. من تا جایی که توان دارم تو رو باش آقه هم نگه باشه درد خیالتون راحت ای بارون چقدر شدید شده پدر نیبینی هوانگ نیبینی نگرانی من بی نبود حالا چکار کنید پدر بیا بیا بیا, <تصفيق> بیا کنار من <تصفيق> باشه <تصفيق> بیا این بارون چقدر شدیده این بارون بارون مرگه بارون, بارون مرگ پدر نباید انقدر نامید باشی نامید نیستم نه نا. نا. خم بگم خطر خیلی که اونجا رو ببین پدر انتاقه سیل میاد سیل خوک مکم شاخه های منو بگیر خوانگ به هیچ عنوان از من جدا نشوفه سرم باشه پدر خوبه آقا چقدر داریک شد بزرگی در را یه سیل هول مراقب باش مراقب باش ما های منو بکن احم احم مراقب باش از ریش جداس شد از ریش جداس شد از جدا از چه طریق از چه طریق از از دابو برش جدا شد و جریان سیل اونو با خودش برد در حالی که هوانک هم روی شاخه های درخت نشسته بود و محکم اونا رو در بغل گرفته بود سیل هر لحظه خروشان تر و شدید تر شد و درخت مثل شیعی سبک روی موج‌های خروشان سیل به حرکت در اومده آره خوبم مشکلی نداری؟ نه یکی از جاقاهای تو محکم بغل کردم خوب نگران من نباشی. کاش هر بتونیم دوم بیاریم فقط خدا میدونه این تا که میخواد ادامه داشته باشه او ما رو خودش به کجا میخواد ببره چند سال پیشم چون این تیلی اومد اما به این اندازه هولاک نبود با چاره جز تسلیم شدن نداریم قمک قمک به ما کمک بود قمک صدای نگار یکی به کمکت نیاز داره هورگ آه! تو کیستی؟ بره! این پایی! بر بره شنام کجا؟ من که کسی رو نببینم اله هشوند! یه مورچه است فریدیا! یک اون کمک هم کنید! یه کمکت نیاز داری بزره دارم اگه شما چند نفرید؟ با یک علم مورچه ای که سیلامون و منو خونمونو خراب کرد و حالا همه همون روی مورچه سیلاب شنام شما با کمک کنی شما چی میگی پدر؟ این چه کمکیشو که میشه خواک مکان همشون روی برگای من بشین باشه پدر شنیلی مرچه قبطتون میتونیم بیایید رویش آقای درخ بشینیم الان کمکتون میکنم دیایی رو نست من کمک کرد تا مورچه ها همگی تونستن خودشونو به برگای درخت برسونن و نجات پیدا کنن بارون همچنان میبارید. صدای رد و برق در فضا میپیچید. سیلاب سیلا مواج و خروشان پیش می رفت درخت هم همچنان سبک بال و شتابان همراه با موج ها پیش می رفت در حالی که هوانگ و گله مورچه ها روی شاخه هاش بودن آنگ. حالت خوبه پسرم؟ من خوبم پدر. اما این بار حال شما خوب نیست چندتا از شاخه هاتون به خاطر شدت سیلاب شکسته نگران نباش اونا ضعیف بوده دیر یا زود باید میشکسته مهم اینه که شاخه های تنومند من زیادن و میتونن از شما هم محافظت کنن و همجامون امنه خیلی خوبه که به ما هم اتیاده دارین همراهتون باشید حاله مهمی می نکردین جانب مرچه خوبه که تو همچین مواقعی با هم باشیم بتونیم به هم کمک کنیم کمک چی بود؟ من فکر کردم صدایی که از اون نه از این نبود فکر کنم از بالا کسی از ما کمک میخواد آره کمک ما کمک اون چه رو ببین؟ اون بالا بالا؟ خدای من چقدر پچه هم بالاست؟ آره. گله بزرگ پشه ایم این کمکتون نیاستنیم شما که میتونیم پرواز کنیم از چی میترسیم؟ درست میگیم بزن درخ بالای چند روزه که ما شبانه روز در حال پربازیم بنامون خسته شدن از نفس رو اگه میشه اجازه بدید ما هم ریشا خواهی استراحت درخ بشیریم و کنیم یه لعظه صف کن یکتر گله یه از ما میخوان اجازه بدیم روی هات بشینن اجازه میدین؟ البته که اجازه میدم ما باید به هم کمک کنیم پسر ممنونم پدر پدر اجازه دادن زود بشین همه تو بیای رو روی درخت بشینین بشین اجله کنین اجله کنین بیای باید. کلی پشه ها هم همگی روی برگای درخت نشستن باران همچنان به شدت می بارید. جریان سیلاب هر لحظه تندتر تر می شد ناگهان هوانگ صدایی شنید آه پدر نکار من یه صدای شنید. صدای؟ صدایی شنیدم چه صدایی؟ صدای کسی که کمک میخواد. خواد یه نفر داره تو سیلاب قرخ, بله. قرخ میشه پتار نفر تو سیلاب گیر افتاده بله درست چیم؟ ازیار کنن کمک کنن بیادرش آقا بشینه نه، نه، داره قرخ میشه جنابه داره داره قرخ میشه در اجازه میدیم کمکش بیا تو خواه بشینه گفتم نه با... اگه خیلی زود نجا تشنگیم میمیگه کمکش کنم کار کنم بدم کمکش بهش اجازه بدم بیا دوشها خواه نه. هر کاری دوستاری بکن ممنونه بدم آهای آه. آه. آه. اسمت چیه؟ بیا دست بده من بی. آه بیا اجره بیا بیشتن باید دستا به من برسه بیا. آه بیا. آه بیا بیا آه بیا آه با تمامه توانت باید بیا این روشان خواهب بیا آه. آه. آه. آه. عزازون عزازون ممنون اگه رو کجا؟ اونها اون رو برو که به یه جزیری میرسی یه جزیری تویش یکی را رو آره آره منم درم اون جزیره رو میبینم میتونین جزیره رو ببینی پدر نه شما همه ایستادین از اون بالا میتونین اونجا رو ببینی من جزیره ولی اگر اونجایی که میبینین واقعا یا جزیره باشه برانیش اینه که ما نجات پیدا کردیم نجات پیدا کردی. نجات پیدا کردیم, نجات پیدا کردیم. بارش باران و جاری شدن سیلاب چند روزی ادامه داشت تا اینکه درخت درخت برگبو به همراه هوانگ و یانگ بی و مورچه ها و پشه ها به جزیره دور افتاده رسیدن وقتی همگی به جزیره رسیدند، مورچه ها و پشه ها از هوانگ و درخت تشکر کردن و رفتن هوانگ و یانگ بی هم از درخت خدافزی کردن و برای پیدا کردن غذا در جزیره به راه خستم یا اینکی هم خستم هم گرستنه حالا روز منم بتر از تو نیست دیگه توان را رفتن نه. هران ممکنه بیافتم و از حال برم اگه نتونیم تو این جزیره قضایی پیدا آه. کنیم چی؟ اگه از گرست نگیم مردیم چی؟ ندانه چی همون تو اشتباه کردی که مردیم و پشه ها رو نجات دادیم منظور چه؟ منظورم نکه اونا همه که الان تو همین جزیران رو میتونن قبل از ما خوراکیهای زیادی پیدا کنن و بخورن. اون وقت من و تو بارسته میمونم ولی اونا به کمک نیاز داشتن درست مثل وقتی که تو به کمک منو و پدرم نیاز داشتی من فقط من من انسان. خیلی کم میتونم غذا بخورم. اما یه گله مورچه و یه گله پشه میتونن همه یه حیوانات این جزیره رو از با در بیارن و بخورن نه, بی نه. تو داری این میکنی این جزیره انقدام که تو فکر میکنی کوچک نیست اگه همه جاشو خوب بگردین میتونیم برای خودمون غذا پیدا کنیم آمیدوارم اونجا رو ببین یانگی کجا؟ اون روبرو انگار دارم یه کلوه میبینم درسته؟ سبک رو آره یه کول <سؤال> با، یه امبوقع یه کول با، اصلاً که پای انسان و اینجوری ده شده. خدای من، یعنی ما نجات پیدا کردیم؟ ما من هم اینطوره نجات پیدا کردیم. پدرم همیشه میگه وقتی با دیگران مهربون باشی، خداوندم ما مهربونی به تو نعمت میده. <سؤال> دست برداروا، ولی من مطمئنم خدا میخواد بهمون کمک کنه، یانگی. بهترین راه رو بیافتیم بریم سمت کله حجه، بیا بری. شرم، یانگ به طرف کلبه رفتند. کلبه متعلق به پیرزنی بود که دو دختر داشت. یکی از اون دخترها دختر خود پیرزن بود که باهوش بود و مهربون و اون یکی دختر خوندش بود که هوش و حواس درستی نداشت. پیرزن با مهربونی به هوانگ و یانگ بی خوش آمد گفت و اجازه داد که تو مزرعش کار کنن. مدتی بعد پیرزن وقتی دید که هوانگ و یانگ بی خیلی خوب کار میکنن نخشهی کشید چی شده مادر. چرا تو فکرین؟ نخشهی دارم دخترم نخشهی که اگه اونجوری که خودم میخوام اتفاق بیفته خوشبخت میشی محضورتون چیه؟ تمام سهم من از دنیا توی دخترم. همه یه آرزومم اینه که تو را خوشبخت ببینم. خب، به نظرم هوانگ و یانگ بی خوبی هستن، شایستن. بخوام تو خواهر خوندت با هوانگ و یانگبی ازدواج کدین؟ <تصفيق> ازدواج کنی؟ آروم باش آهسته هر بزن نمیخوام کسی از این راز باخبر بشه چی داریم میگین مادر؟ تو تنها فرزند منی زیبایی باهوشی میخوام کاری کنم که هر کدوم از اون دو نفر که باهوشتره با تو ازدواج کنه و اون یکی با خواهرخوندت ولی مادر خوهر ای منم دختر خوبیه فقط گاهی وقتا حواظ پرته منم نگفتم که دختر خوبی نیست فقط میخوام تو با یه مرد باهوش و زرنگ ازدواج کنی دخترم فقط یادت باشه که این راز باید بین خودم و خودت بمونه باشه هرچی شما بگی پیرزن نقشه با دخترش در میان گذاشت قافل از اینکه یانگبی یانگ بی از پشت در کلبه همه ی حرفای اونا رو شنیده بود یانگبی بی که دلش میخواست با دختر واقعی پیرزن ازدواج کنه نقشه شو میکشید کیه؟ منم یانگ بی. سلام سلام یانگ بی خوش اومدی پسرم بیا تو اح. چی شده که این وقت روز اومدی خونه هوانگ اینقدر زرنگ هست بتونه به تنهایی مزرع رو اداره کنم یعنی تو دیگه نمیخوای به وانگ کمک کنی؟ چرا چرا ولی چرا وانگ دوست منه دلم میخواست بیا ما به شما بگم که اون چقدر باهوش زرنگ؟ زرنگه مطمئنی؟ آره آره مطمئنم اگه باور ندارین میتونین هوش اونو امتحان کنین چطوری؟ میتونین کیسه ارزن روی ها پخش کنین باور کنین هوانگ انقدر باهوشه که ظرف نیم ساعت همه اون ارزنا رو جمع میکنن. چی میگی یانگ بی؟ چنین چیزی اصلا امکان نداره اوه. میتونین امتحان کنین و حوش و ذکاوت هوانگ رو با چشای خودتون ببینین مم. بسیار خب همین الان اون کیسه ارزن رو روی ماسه میریزیم میریزیم ببینیم گوان چطور میخواد اونا رو در کمتر از یک ساعت جمع کنه فکر خوبیه من میرم کیسه ارزن رو داخل انبار میرم از یانگ بی خواست کیسه ارزن رو روی ماسه ها بریزه. یانگ بی درخواست پیرزن رو انجام داد. مدتی بعد پیرزن به هوانگ گفت خیلی زود بیاد و همه اون ارزنا رو در کمتر از یک ساعت جمع کنه. هوانگ خیلی تعجب کرد. جمع کردن اون همه ارزن در مدت کم ممکن نبود. اما پیرزن بازم حرفش رو تکرار کرد و به هوانگ گفت خیلی زود باید ارزنا رو جمع کنه. اینها رو گفت و هوانگو با یک کیسه ارزن ریخته شده روی ماسه ها تنها گذاشت. من چطوری میتونم این همه ارزن رو جمع کنم ولی چاره ای نیست باید شروع کنم خیلی زیاده که ارزنها ها با شنا قاطی شدن من تا یه سال دیگر نمیتونم اون رو جمع کنم آه. چی کار کنن این چی بود منو رو نیش ست نگره نباش خواهی منم آه. تو کی هستی؟ این پایین رو نگاه کن منم مورچه بیا رو دست من آه. سلام جناب مورچه. حالت خوبه من خوبم ولی مثل اینجا تو خیلی هم حالت خوب نیست درسته آخه به جوری گرفتار شدم چی شده اینجا رو خوب ببین این پایین پیرزن یک کیسه ارزن ریخته رو این شنا از من خواسته ظرفه یه صد همه ارزنه رو جمع کنه. که کاری نداره؟ کاری نداره. منظور چیه؟ تو به منو دوستام کمک کردی وان. ما این مهربونی رو هیچ‌وقت یاد نمیبندیم. حالا هم نوبت ماست که به تو کمک کنیم. چطوری؟ همین الان دوستام رو صدا می‌زنم تا بیان و خیلی زود این ارزنا رو از تابلهای ماشاها بردارن و داخل کیسه بذارن. واس جناب مورچه؟ ما بکراس میگم تو فقط بشین و تماشا کن تونستند در کمتر از یک ساعت همه ارزنا را از بین ماسه ها جدا کنن و داخل کیسه بریزند. یانگ بی که این صحنه رو از پشت صخره ها دیده بود، حسابی به هوانگ اسودی شد و به همین دلیل پیش پیرزن رفت و همه ماجرا رو برای اون تعریف کرد و گفت که هوانگ دروغگو و فریب کاره پیرزن که برای ازدواج دخترش با هوانگ دوچار تردید شده بود، تصمیم گرفت نقشه دیگه ای طرح کنه. هوانگ، یانگ بی، شماها های خوبی هستین. هر دوتونم به یه اندازه دوست دارم. به همین دلیلم دلم میخواد که شما با دخترای من ازدواج کنی. شما پیرزن مهربانی هستین خانم. ممنونم هوانگ. تو هم پسر خوب و باهوشی هستی. هیچ کس نمیتونست مثل تو ظرف یک ساعت اون همه ارزن رو از روی ماسه ها جمع کنه ما چی کار میتونیم بکنیم خانو؟ من باید تصمیم بگیرم که کدوم یکیتون با دخترم ازدواج کنین و کدوم یکیتون با دختر خوندم این کار خیلی هم سخت نیست اینکه اون تونست در کمتر از یک ساعت همه ی ارزن ها رو جمع کنه خیلی خوبه اما فکر دیگه ای به ذهنم رسید نقشه ای رو ترک کردم که هر دوی شما باید در اجرای اون با من همکاری کنید چه نقشه فکر می کنم بهترین کار اینه که خودتون سرنوشتتون رو انتخاب کنید یعنی چطوری؟ امشب ماه در آسمون نیست آخرین شب ماه و همه جا تاریکه تاریکه تاریک خوب. من امشب از دختران میخوام که از کلبه بیرون برن یکیشون باید بره سمت راست اون یکی هم بره سمت چپ خب بعدم از شما میخوام که از کلبه بیرون برید بعدم به طرف این کلبه برید و همسر رو انتخاب کنین یعنی هر کدومتون به اختیار خودتون سمت همسر آیندهتون میرین چطوره؟ به نظر من که فکر خوبیه تو چی میگی یانگ بی؟ خب به نظر منم فکر خوبیه <تصفيق> بسیار خوب فعلا میتونین برین مزرعه و به کاراتون برسین امشب معلوم میشه که کدوم یکی از شما با دخترم ازدواج میکنه و کدوم یکیتون با دختر خوندم نقشش رو با هوانگ و یانگ بی در میون گذاشت و از اونا خواست تا شب منتظر بمونن شب از راه رسید پیرزن طبق نقشه دختر و دختر خوندش رو از کلبه بیرون فرستاد و از هر کدوم خواست به یه طرف برن بعد هم به هوانگ و یانگ بی گفت که از کلبه بیرون برن خدایا کمکم کنم من دلم میخواد با دختر واقعی این پیرزن کنم کنار ببینم چی از جون ما می‌خوایم پکا سمچ تو دو... دو... کی هستی آروم باش باباجان سلام جناب پشه حالی چطوره من خوبم ولی به نظر تو خیلی خوب نیستی درسته میدونی من دلم میخواد با دختر واقعی فیرزن ازدواج کنم فیرزن هم دخترو دخترخونده‌ش از خونه بیرون کرده از منو و یانگ بریم به طرف اونا هر کدوم از طرف هر دختر رفت بعد با اون دختر ازدواج کنه تو پسر خوب و مهربونی هستی برای گلی رشام خیلی کمک کردی و جونمونو نجات داد. برای همینم من دلم می‌خواد چه بهت کمک کنم. راست میگی جناب فشفه؟ معلومه که راست. میگی. <تصفح> به نظر من دختر واقعی پیرزن، دختر خوب و, آقلی و تو این لیاقتو داری که اونو به همسری انتخاب کنی. به همین دلیل من ازت میخوام که به سمت راست بری. سمت راست؟ آره. چه دختر واقعی پیرزن به طرف لاستیکول رفت و یانگ به قصد داره به سمت چپ بره. برو هونگ برو سرنوشت خوبه تو انتخاب کن موفق باشی هونگ موفق باشی هون. <تصفيق> هونگ تبقیه خواسته پشه عمل کرد و به سمت راست کول برفت در حالی که یانگ بی به طرف چپ رفته هوانگ کمی جلوتر رفت و به دختر واقعی پیرزن رسید. یانگ بی هم به دختر خوانده پیرزن نزدیک شد. فردای اون روز پیرزن مراسم عروسی هوانگ و یانگ بی رو با دختر و دختر خوندش برگزار کرد و اونا سالیان سال با همسرانشون به خوبی و خوشی زندگی کرد. دوستان این هم از افسانه سیل هولنا که از کتاب افسانه های عامیانه کره نوشته زورنگین سوب انتخاب شده و به همت جمشید سلطانی ترجمه شده بود حتما شما هم درس و حکمت نهفته در این افسانه را متوجه شدین مهربانی درسته مهربانی پیام نهفته در این افسانه بود و اینکه پاسخ مهربانی جز مهربانی نیست سیل هولناک تنظیم برای رادیو سهیلا خدادادی، راوی شیرین سپهران بازیگران گلچهره زند محمد رضا علی امیر فرهان محمد سعید سلطانی کامیار محبی امیر زنده دلان بهناز بستان دوست و با حضور مهین نصری کارگردان بهرام سروری نجات افکتور محمد رزا قبادی فر صدا بردار محمد رزا محتشمی تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افثانه ها رنگی از زندگی هست. افسانه زندگیتون دلنشین و مانا. تا افسانهای دیگر بدرو.